اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ای پیامبر چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام می و خداوند آمرزنده و رحیم است قد فرض الله لكم تحلت عمانکوم والله مولاقم ووهو العلی الحکیم خداوند راه گشودن سوگندهایتان را روشن ساخته و خداوند مولای شماست و او دانا و حکیم است.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 به خاطر بیاورید هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش گفت ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود هنگامی که پیامبر همسرش را از آن خبرداد گفت چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟ فرمود خداوند عالم و آگاه مرا باخبر ساخت اینت توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما و اینت ظاهرا عليه فإن الله هو مولاه و و صالح المؤمنین والملائکت بعد ذلك ظهیر اگر شما همسران پیامبر از کار خود توبه کنید به نفع شماست زیرا دلهایتان از حق منحرف گشته و اگر ضد او دست به دست هم دهید کاری از پیش نخواهید برد زیرا خداوند یاور اوست. و همچنین جبرئیل و مؤمنان صالح و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان او یند عسا ربه این طلق کند این يبدله ازواجا, ای ازواجا خیرا من کند مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثیبات و أبكارا. امید است که اگر او شما را طلاق دهد پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد همسرانی مسلمان، مؤمن، متواضع توبکار، آبد، هجرت کننده، زنانی غیر باکره و باکره یا ایوها الذین آمنوا قو انفسكم و نارا و وَأَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ أي كثاني كإيمان خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ هاست نگه دارید، آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سخت گیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آن را فرمان داده شده اند به طور کامل اجرا می نمایند.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 إلى الله توبة نصوحا عسى عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم یسعه بین ایدیم و بی ایمانیم یقولون ربنا اتمیم لنا نورنا واغفر لنا اینکه على كل شیئی قدیر ای کسانی که ایمان آورده اید به سوی خدا توبه کنید توبه ای خالص امید است با این کار پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاریست وارد کند در آن روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان آوردند خار نمیکند. این در حالی است که نورشان پیشاه پیش آنان و از سوی راستشان در حرکت است و می پروردگارا نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر چیز توانایی یا ایوها النبی جاهدی الکفار والمنافقین و علیهم و جهنم وبئس المصیر ای پیامبر با کفار و منافقین پیکار کن و بر آنان سخت بگیر جایگاهشان جهنم است و بد فرجامی است دارد الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت بدین من عبادنا صالحين فخانتهما فخاناتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار وقيل ادخل النار مع الداخلين خداوند برای کسانی که کافر شده اند به همسر نوح و همسر لوت مثل زده است آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو پیامبر سودی به حالشان در برابر عذاب الهی نداشت و به آنها گفته شد وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند و ضرب الله مثلا للذین آمن امرأة فرعون اذ قالت ربی بنیلی عندک إذ قالت رب ابن لی عندك بیتا في الجنة ونجنی, ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین و خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثل زده است در آن هنگام كه گفت پروردگارا خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش و مریم عمران احصنت فنفخنا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ و همچنین به مریم دختر امران که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم او کلمات پروردگار و کتابهایش را تصدیق کرد و از موتی آن فرمان خدا بود